سلام آقا سلام شما به بالای کوه می روید؟ بله فردا صبح من و دوستانم به بالای کوه می رویم فکر می کنم شما ایرانی نیستید درست است؟ بله من ایرانی نیستم من هندی هستم دوستان شما هم هندی هستند؟ ما ده نفر هستیم، چهار ایرانی، دو هندی و چهار آلمانی. کوه دماوند خیلی بلند است. کی بر می گردید هفته بعد، یک شنبه. موفق باشید. متشکرم. شما هم به بالای کوه میروید؟ نه نه من کوه دماوند را دوست دارم. خیلی زیباست. بله. خیلی زیباست تنها دو کوه در دنیا شبیه به این کوه هستند اون آقا شما را صدا میزند خدا حافظ خدا حافظ موفق باشید